سلام دوباره شما دارید قسمت ششم پادکست علیف رو گوش کنید و چون نمایشنامی دشمن مردم طولانی بود و زمان ضبطش هم طولانی شد این نمایشنامه هم در دو قسمت برای شما منتشر شد که حالا شما میتونید دو پرده آخرش رو در این قسمت بشنوید سحنه باز هم عوض میشه. این بار اتاق قدیمی بزرگی در خانه ناخدا که روی صحنه نمایش داده میشه. در دیوار سمت چپ سه پنجره با فاصله از هم وجود داره. حدودا وسط دیوار مقابل سکویی هست که روش میز کوچیکی قرار داره با دو یه یه بطری آب و یه زنگ. بقیه اتاق با چراغهای دیواری بین پنجرهها روشن میشه. شمار زیادی از مردم شهر از طبقات مختلف توی اون اتاق جمع شدند. میون اونا چند تایی زن و دانش آموز میبینیم. های بیشتری هم میان تا اینکه اتاق کاملا پر میشه. روی صحنه ایده شهروند با هم در حال گپ گفتن. یکی از اونا میگه سوت را اون یکی میگه اونسن قرار بوق بوغ گندش رو بیاره. یکی دیگه اصلاً نمیدونه موضوع جلسه چیه و الله بختکی هر جلسه که برگزار بشه خودشو میرسونه. اون یکی میگه قرار دکتر استوکمان علیه شهردار صحبت کنه. ولی میگن حرفاش کلا بی سر و تهه. اینو توی ندای مردم خونده یکی دیگه هم تایید میکنه که آره این دفعه حرفاش باید دریبری باشه چون نه مهمون خونه دارها و نه باشگاه شهروندها بهش سالون ندادن حتی سالون چشمه ها هم بهش ندادن در یک گروه دیگه بحث سر اینه که طرف کیو بگیرن و قرار گذاشتن هر کاری که آسلاکسن کرد اونا هم همون کارو بکنن همین موقع بیلینگ با پوشه ای زیر بغل برای یادداشت برداری راهش رو از میون میکنه و سر میزی در سمت چپ میشینه ناخدا خانم استوکمان و پترا رو از در سمت راست به درون اتاق راهنمایی میکنه. الیف و مورتن هم پشت سر اونا وارد اتاق میشن. خانم استوکمان و پترا در حالی که دارن می‌شینن از ناخدا به خاطر این حرکت شجاعانه که حاضر شد سالن خونش رو در اختیارشون قرار بده تشکر می‌کنن. هرچند ناخدا هورستر فکر نمیکنه کارش خیلی هم شجاعانه بوده باشه و اینو یه جور انجام وظیفه میدونه تا لوت. سردبیر هوفسات و آسلاکسن همزمان با هم از راه میرسن. ولی جداگانه راهشون را از میون جمعیت باز می کند. کم و کم جوشی در ته صحنه رخ میده و شهردار به آرامی و با تعظیم های راهش را از میون جمعیت باز میکنه و کنار دیوار سمت چپ مییست. لحظه بعد دکتر استوکبان از در سمت راست بیرون میاد. کت مجلسی مشکی و شالگردن سفیدی پوشیده. صدای کف زدن های پراکنده و مردد توی سالن پخش میشه که با هیس سکوت دعوت میشه اتاق در سکوت فرو میره دکتر استوکمان بعد از اینکه زیر لبی حال همسرش رو میپرسه به ساعتش نگاه میکنه روی سکو میره و تعظیم میکنه آماده برای شروع سخنرانی مخصوصاً که 15 دقیقه هم از زمان مقرر گذشته نوشتش رو در میاره که یهو ای آسلاکسن ایراد می گیره که اول از همه باید رئیس جلسه انتخاب کنند دکتر استوکمان حصش میگیره میگه نیازی به این کار نیست ولی چند نفر از میون جمعیت فریاد تایید سر میدن حتی شهردار هم به نفع پیشنهاد آسلاکسن مداخله میکنه و این میشه که دکتر به ناچار موافقت میکنه نهایتا به پیشنهاد شهردار و فریاد تایید تکوتوکی از حزار آسلاکسن میشه رئیس جلسه با این حال بیلینک خبرنگار لحظه به لحظه ای جلسه است اینطوری مینویسه که آقای آسلاکسن با رای شفاهی و پرشور مردم انتخاب شد آسلاکسند دوباره نتخای همیشگیش رو سر میده که اعتدال و میان روی بهترین فضیلت برازنده یه شهرونده و از دکتر میخواد که اینو مدنظر داشته باشه و در چارچوب اعتدال عمل کنه. فقط فرد مست مجلس که تنها چیزی که از ظاهرش پیداست عدم اعتدالشه به نشانه موافقت میگه به سلامتی انجمن اعتدال نوش، شهردار هم اجازه صحبت میخواد و پیشنهادی مطرح میکنه که باعث برافروخته شدن دکتر استوکبان میشه. شهردار میخواد که به خاطر نگرانیی که برای شهر داره برای درج نکردن حرفهایی به اصطلاح غیر مستنعت درباره وضعیت بهداشتی چشمه به جاهای دیگه، دکتر هیچ حرفی که به چشمه ها مربوطه رو نگه. چون این کار در اصل و عملا، به معنی تحمیل مخارج غیر ضروری بالغ بر صد هزار کرون بر مردم مالیات مالیاتبده شهره صدای همهمه و سوت موافقت و حضار شنیده میشه. آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و همچنان که مردم رو به نظم فرامی میخونه از حرفهای شهردار حمایت میکنه. آسلاکسن معتقده که پشت این تحریکات دکتر چیز دیگه ای باید باشه. یعنی دکتر در ظاهر از چشمه ها حرف میزنه ولی قصتش اینه که انقلابی به تا دولت بیفته دست کسای دیگه. و هر خودش طرفدار اداره امور توسط مردمه ولی به شرطی که عواقبش کمر مردم مالیات بده رو نشکونه که در این مورد خاص میشکنه. پس امکان نداره که طرف دکتر استوکمان رو بگیره هزار کف میزنن این بار اوفساده که شروع میکنه به حرف زدن احتمالا برای تحریک افکار عمومی از اراده اکثریتی میگه که مخالف دکتر استوکمان از اساسی ترین وظیفه یه سردبیر میگه که همسو بودن با خوانندگانشه هرچند خود هنریک ایپسن معتقده رسانه باید پیشرو باشه نه پیرو و هم با جامعه و از توافق نانوشته که بین اون و خواننده ها شکل گرفته تا فعالانه و با جدیت برای آسایش همشهریاش کار کنه. باز هم چند صدای موافقت هزار بلند میشه. هوفستاد ادامه میده که براش خیلی گرون تموم شده که به مردی پشت کنه که بارها نون و نمکش رو خورده ولی وظیفش رو نسبت به جامعه باید انجام بده تا به اون مرد پشت کنه و البته برای این کار دلیل دیگه هم داره و اونم حفظ منافع خونوواده دکتره. یادمون هست که حفاد به دختر دکتر علاقه دکتر میگه برید سر اصل مطلب آساکسه میخواد پیشنهاد شهردار رو به رأی بذاره همون پیشنهاد که میگه دکتر نباید درباره آلودگی چشما حرف بزنه که دکتر میگه لازم نیست چون مثلا میخواام درباره موضوع کاملا متفاوتی حرف بزنم مرد مست دم در ورودی پیداش میشه و میگه ما هم که یه مالیات بدهی موجه این مملکتیم خب ما هم حق داریم نظر بدیم دوباره میندازنش بیرون این مرد مست احتمالاً به نظر ایپسن نماینده برای نشون دادن اوضاع و احوال اکثریت جمع. یه جور عدم داشتن آگاهی که جلوتر بیشتر متوجه میشین دکتر ادامه میده تا همین دو سه روز قبل خیلی دوست داشتم ببینم کسی جراتش رو داره که بخواد صدای من رو خفه کنه یا نه مثل شیر از مقدس حقوقم به عنوان یه انسان دفاع میکردم ولی حالا دیگه اینا برام ال است چون که چیزای مهمتری دارم که بگم مردم گردش حلقه میزنن مرتنکیل پدر خانم دکتر رو هم میون جمعیت ایستاده میبینیم دکتر ادامه میده این چند روز اخیر خیلی فکر کردم و کم کم همه چیز برام روشن شد برای همینه که امشب اینجا ایستادم میخوام براتون از یه کشف بزرگ بگم هم شهریای من چیزی که بی نهایت مهمتر از اینه که سیستم آبرسانی ما آلوده است چند نفر فریاد میکشند، بس دیگه از چشمه ها حرف نزنین گوش نمیدیم دکتر ادامه میده گفتم که میخوام از کشف بزرگم براتون بگم میخوام براتون بگم که کل منابع زندگی معنویمون هم آلوده است و کل ارکان جامعه مدنیمون هم غرق میکروب ریا و دروغه چندین صدا بلند میشه آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و به دکتر تذکر میده که اعتدال رو توی زبونش نگه داره دکتر ادامه میده و از عشق شدیدش به شهر زادگاهش میگه از دوران محرومیت و سختی هایی که بعد از ترک اینجا و رفتن به شمال اونم موقعی که هنوز سنی نداشت میگه از اینکه بارها و بارها با دیدن مردم بدبخت میون سخره و کوه به نظرش رسید که شاید خیلی بهتر بود به جای خودش یه دامپزشک از این آدم های محجور و محروم مراقبت میکرد. زمزمه میون جمعیت شنیده میشه. بیلینگ از تعجب قلمش رو زمین میذاره. هفستاد حرف دکتر رو احانت مستقیمی به قشر محترم روستا میدونه. اما دکتر سعی میکنه حرفاش رو پیش ببره. از فراموش نکردن زادگاهش حتی توی اون دهکوره میگه تا رسیدن به ایده تأسیسات تا اینکه دو شب قبل چشم عقلش کاملا باز میشه و چیزی که میبینه حماقت و گندکاری نکردنی مسئولانه که در تاسیسات آبگیر مقصرن از نظر دکتر اونها راه انسان آزاده رو هر جا که برسه ست میکنن و مونده که چطور تازه به ماهیت این آقایون پی برده چون یه نمونهشون همین برادرش پیتر 24 ساعته جلوی چشماش بوده صدای خنده هم همه و سوت میپیچه خانم دکتر استوکمان برای جلب توجه شوهرش صرفه میکنه تا مراقب حرفاش باشه. آسلاکسن زنگ رو شدیدن به صدا در میاره. مرد مست به دل جمع بر میگرده که البته خیلی زود دوباره بیرونش می میگن مرد مست مال این شهر نیست و احتمالا دلال الوار یا از عمله راهه. آسلاکسن میگه اون مرد زیاده روی کرده یعنی زیادی، مشروب خورده و از دکتر میخواد که مثل اون مرد مست زیاده روی نکنه. منظورش توی حرفاشه. بعد از تذکر آسلاکسن دکتر استوکمان حرفاش رو ادامه میده و میگه خب هم شهری های من دیگه بیشتر از این درباره رهبرانمون نمیگم. اگر کسی فکر میکنه با این چیزایی که اینجا گفتم میخوام امشب این آقایون رو سر کنم سخت در اشتباهه. این عتیقه ها دارن به دست خودشون گور خودشون رو میکنن و نیازی به کمک من ندارن. اصلا این جماعت نیستن که جدیترین خطر برای جامعه محسوب میشن. اینها خطرناک ترین دشمن حقیقت و آزادی جامعه نیستند. مردم از هر طرف با کنجکاوی زیاد فریاد میکشن پس کیان؟ اونا کیان اسمشون چیه؟ و دکتر بالاخره از بزرگترین کشف به روز گذشتش پرده برمیداره و با صدای بلند میگه که کاریترین دشمنان حقیقت و آزادی میون همین ماهاست میون همین اکثریت اکثریت اجتماع دشمنمون خود مایم. ما در اتاق آشوب به پا میشه. تقریبا همه هزار فریاد میکشند و پا به زمین میکوبند. سوت میزنند. کاترین با نگرانی از جاش بلند میشه. پسرهای دکتر تهدیدکنان به سمت دانش آموزانی که هو میکنند هجوم میبرند. آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و از دکتر میخواد که حرفش رو پس بگیره. اما دکتر همچین کاری نمیکنه چون عقیده داره همین اکثریت بزرگ جامعه ان که آزادی رو ازش سلب میکنن و نمیذارن که حقیقت رو بگه اون در جواب حفظات و بلین که میگن البته که همیشه حق با اکثریت میگه حق هیچ وقت با اکثریت نیست تاکید میکنم هیچ وقت اینها یکی از دروخای مرسومه که انسان آزاده و فکور باید علیهش بشوره اونهایی که اکثریت رو در یک کشور تشکیل میدن کیان آقلان یا ابلهان و میگه فکر میکنم در این باره باید موافق باشیم که در حال حاضر در سراسر دنیا اکثریت سرکوبگر انسانهای نادان اطرافمون رو گرفتن ولی مطمئنا اصلا درست نیست که صفحا باید بر اغلا حکومت کنند. دوباره همهمه و فریاد جمعیت بلند میشه اما دکتر همچنان ادامه میده بله میتونیم با داد و قال خفم کنیم. اما حقیقت رو که نمیتونین انکار کنیم اکثریت بدبختانه قدرت داره ولی حق با اون نیست حق با من و چندهای دیگه است حق همیشه با اقلیته هم همه همچنان ادامه داره حفظات میگه که دکتر طرفدار اشرافیت شده اما دکتر قبول نداره میگه نه نه من نگران چند فرد انگشت جمار میون خودمون هستم که به همه حقایق تازه و بالنده حاته دارن آدم هایی که اونقدر پیشرفتن که اکثریت قاطع به گردشون هم نمیرسن. این آدمها در دفاع از حقایقی می جنگن که همین اواخر در آگاهی جهانی متولد شدن و هرگز توی مخ اکثریت فرو نمیرن. حفظات میگه که خب پس دکتر انقلابی شده. دکتر حرفشو قبول داره چون میخواد علیه این دروغ تقیان کنه که حق و حقیقت همیشه با اکثریته. حقایقی که اکثریت در اختیار داره و حقایقی که اونقدر سال خوردن که دیگه نخنما شدن و وقتی حقیقتی اینقدر کهنه شده باشه افتاده توی مسیر مناسبی که به دروغ تبدیل بشه دکتر عقیده داره یه حقیقت معمول و مقبول اصولا طول عمرش شیده 18 سال فوقش 20 ساله نه بیشتر. همه این حقایقی که اکثریت بهش تکیم کنن مثل سوسیس تقلبی کپک زده و ترشیدن که حاصلش همین زوال معنویه که توی جامعه بیداد میکنه. این حقایقی که امروز آمی ما می پسندن اینن همون حقایقی هستن که نیاکان جنگجوی ما به میان گذاشتن. اینها به کار همون دوره همی خورن. منظور دکتر احتمالا اشاره داره با وایکینگ ها که از نجاد همین مردم بودن چون کمتر با شرایط و ویژگی روز جامعه هم دارند هوفستاد میخواد بدونه که دقیقا این حقایق عتیقه و مردهی که ما باهاشون زندگی میکنیم چیان؟ و دکتر فقط به گفتن یکی از این حقایق بسنده میکنه. حقیقتی که از نظرش هرچند عملا یه دروغ پلیده. اما هم هوفستاد، هم مطبوعاتی مثل ندای مردم و هم همه سرسپرده های ندای مردم باهاش زندگی میکنن. همون چیزی که ما از اجدادمون به ارس بردیم و بعد هم و خیلی گسترده ازش دفاع کردیم. اینه که توده مردم هسته ی حیاتی مردم هستند و اینه که انسان‌های عادی این مردم جاهل و ناپخته اجتماع به همون اندازه مردم فرهیخته و دارای قدرت تفکر حق دارند محکوم کنند یا تحریم کنند یا حکومت کنن و یا فرمان روایی کنن مردم خشمگین فریاد میکشند یعنی فقط آدمای نجیب حق دارن حکومت کنن ما حق نداریم حیاهوی شدیدی در اتاق برپا میشه یه شهروند به اونسن با فریاد میگه که بوغش رو بزنه. مردم بلند هو میکنن و سود میزنن. تا اینکه کم, کم با فروکش کردن هیاهو، دکتر ازشون میخواد که برای یک بار هم که شده صدای حقیقت رو بشنون. البته انتظار نداره که همه فوراً باهاش موافقت کنن، اما به هوفساد میگه که حداقل از اون انتظار داشت که طرفش رو بگیره چون ادعای روشن فکری داره. وف فریاد میزنه که کی همچین حرفی رو توی روزنامهش گفته و دکتر بعد از کمی فکر میگه که حق با اونه چون هیچ وقت سراحت و جرأت انجام این کار رو نداشته ولی حالا میخواد ثابت کنه که ندای مردم همه رو گمراه میکنه چون میگه اکثریت مردم حسته حیاتی مردم هستن حرف که یه دروغ ژورنالیستی و روزنامه‌ای بیشتر نیست دکتر برای بهتر فهمیده شدن حرفاش مثالی میزنه از تفاوت بین نسل اصلاح نشده و اصلاح شده حیوانات تفاوتی که بینشون بسیار زیاده و خیلی راحت میشه اونو بین یه سگ معمولی ولگرد و کثیف که توی خیابونها وله نسبت به سگ خونگی تربیت شده ای که چندین نسل توی خونه ها پرورش پیدا کرده و غذای خوب و نوای ملایم و موسیقی درش حاکم بوده دید. دکتر میپرسه آیا مغز این سگ خونگی به مراتب بیشتر از مغز سگ ولگرد رشد نکرده؟ البته که رشد کرده. توله های همین سگ های اصیل خونگی هستن که تربیت میشن و کارهای باور نکردنی و دقیقی انجام میدن ولی اون سگ ولگرد رو اگر جون به جونش کنی نمیتونه همچین کارایی رو یاد بگیره یه نفر داد میزنه که دکتر ما سگ نیستیم اما دکتر عقیده داره که ما همه حیوانیم درسته که ما عالی ترین حیوانات هستیم اما نکته اینجاست که حتی در بین ما هم حیوان خوشنژاد و اصیل خیلی نادره آدم ولگرد با آدم تربیت شده خیلی فرق داره دقیقا همینطوری که سگ ولگرد با سگ تربیت شده فرق داره برای دکتر جالب اینه که فقط تا موقعی که گفتگو درباره باره چهارپاست چارپاست حفظات حرفش رو قبول داره که البته همینطور هم میشه و حفظات حرفای دکتر رو تایید میکنه ولی دکتر مطمئنه که اگر موضوع رو بس بده به حیوانای دوپا یعنی انسانها حفظات دیگه قبول نداره و موافق نیست چون جرأت نداره مستقل فکر کنه و اینه که در ندای مردم حتما اعلام میکنه که سگهای ولگرد خیلی هم جانورهای عالی هستن که البته هم حق داره چون آدمی که به افکار عمومی به بچسبه نمیتونه که بهتر از عوام فکر کنه و امتیازی نسبت بهشون داشته باشه حفظات که مسئله رو اشتباه برداشت میکنه میگه که در خانواده روستایی به دنیا آمده و افتخار هم میکنه که از عوامه چند کارگر هوفسات رو تشویق میکنن دکتر اما منظورش متفاوت از حفظ داده توضیح میده که منظورش از عوام و ناس طبقات پایین یا محروم اجتماعی نیست عوام و ناس همه جا هستن هستند توی همه طبقه ها هستند حتی در رأس مناسب عالی اجتماعی هم دیده میشن. نمونش همین شهردار که از هر فر فرد آمی که روزگار به خودش دیده هم عامی تره. صدای خنده و سوت مردم بلند میشه. اما دکتر در میون اعتراض های برادرش به حرفاش ادامه میده که علت عامی بودن شهردار اصل و نصبش نیست. که اون هم مثل خودش از نسل یه دزد دریایی شروره. شهردار که نگران اعتبار اجتماعیشه میگه دروغ میگه. اما دکتر بی به حرفاش ادامه میده که علتش اینه که برادرش افکار کهنر و کورکورانه و بیچون و چرا میپذیره. پس نه تنها هیچ امتیازی برای افراد آمی نداره، بلکه از افکار آزاد هم کاملا بی بهرست است. آیا افراد برجسته اجتماع همین آدمهای آزاد فکر هستند؟ این سوالیه که هوفستاد میپرسه و جوابی که از دکتر میشنوه اینه که بله. این هم قسمتی از کشف تازه ای منه و این رو هم بشنوید که افکار باز و آزاد ملازم اخلاق پسندیده است اصلا هر دو یکی هن. برای همینه که میگم رفتار ندای مردم نابخشودنیه که هر روز خدا به این باور غلط دامن میزنه که اکثریت مردم پاستار اخلاقیاتن و فساد و شرارت و آلودگی معنوی از فرهنگ و آموزش نشأت میگیره درست مثل اون آلودگی که از اون کارگاه اون بالا، توی ملدال همون دباخونه پدر همسر دکتر سرازیر میشه سمت چشمه ها. خوشبختانه این نظریه که فرهنگ مایه فساد اخلاقه دروغ کهنه که پدرانمون معتقد بودن و برای ما به ارث گذاشتن. نه جهل و فقر و شرایط نامساعد زندگانیه که در این دنیا کار شیطان رو انجام میده. توی خونه های اکثر ما هوای تمیز یا همون افکار نو فرهنگ و دانش به قدر کافی وجود نداره. مردم ظرف مدت دو یا سه سال قدرت فکریشون رو از دست میدن و اون وقت از اخلاق دور و منحرف میشن فقدان اکسیژن وجدان رو هم ضعیف میکنه برای همینه که اکثریت تام شهر ما با وجدان بیگانه شدند. که اگر اینطور نبود آبادانی و رفاه شهر خودشون رو به قیمت دروغ و فریب تمین نمی و منکر آلودگی آب چشمه ها نمی شدند تا بلکه خودشون ضرر نکنن آسلاکسن به حرف میاد صدای مردم بلند میشه آنچنان خشمگین که معلوم دهن دکتر رو هر طور شده ببندند دکتر با دیدن این وضعیت اختیار خودش رو از دست میده و میگه میخواد بره تا توی خیابونا حقیقت رو جار بزنه توی روزنامه‌های شهرهای دیگه بنویسه تا همه کشور بدونن اینجا چه خبره میگه شهر زادگاهش اونقدر براش عزیزه که ترجیح میده خرابش کنه ولی نبینه که در سایه دروغ و رزالته که داره آباد میشه تمام کسانی که دارن با دروغ معیشت می باید مثل حشرات موزی نابود بشن. میگه شما اوضاع رو چنان بخیم میکنید که تمام کشور مستحق خرابی خواهند شد. اگر کار دروغ و فساد رو به اونجا بکشونید، من از صمیم قلب فریاد میکنم کنم. بهتره که تمام کشور نابود بشه. بهتره که تمام مردم شهر نابود بشن. بیلینگ، هوفستاد و آسلاکسن و صداهای براشفته از جمعیت، با شنیدن این حرف از دهن دکتر همگی به این باور رسیدن که دکتر استوکمان دشمن قسم خورده مردم این باور اشتباه آسلاکسن پیشنهاد میده رای بگیرن تا ببینند آیا همه موافقن که دکتر دشمن مردم یا نه و برای اینکه ملاحظات شخصی پیش نیاد رای ها کتبی و بدون اسم باشه کاغذی به دو رنگ آبی و سفید پیدا میکنند و قرار میذارند که کاغذ سفید یعنی بله و آبی یعنی نه و شروع میکنن به برش دادن کاغذها و تقسیمشون میونه جمعیت. شهردار از اونجا میره. بین بیلینگ و چندتا تا نجیب زاده بحث بر سر دکتره. میخوام بدونن که دکتر مشروب میخوره یا اخیراً اتفاقاتی افتاده که باعث بشه بزنه به سرش یا نه. و با جوابی که بیلینگ میده نتیجه میگیرن که دکتر نه تنها مشروب میخوره بلکه به خاطر اضافه حقوقی که خواسته اما بهش ندادن یه همچین سخنرانی پرشوری رو راه انداخته. مرد مست دوباره سر و کلش پیدا میشه و اعلام میکنه که بهش کاغذ بدن یه سفید و یه آبی هم محض احتیاط کیل پدر کاتری میاد سراغش و درباره دباخونه های مولدال که دکتر میون سخنرانیش بهشون اشاره کرده بود حرف میزنه و وقتی میفهمه که دکتر درباره اونا و مخصوصا باخونه خود کیل که اتفاقا منشه آلودگی آبه توی ها بنویسه تهدید میکنه که براش گرون تموم میشه مرد تنومندی به اسم ویک هم پیش ناخدا هورسر میاد و از حرفاش معلومه که صاحب کشتیه و میخواد ناخدا رو به خاطر در اختیار قرار دادن خونش برای سخنرانی احتمالا اخراج کنه. آسلاکسن با ورقه‌های رأی که جمع کرده و توی کلاه ریخته، پشت میز سخنرانی میره و نتیجه رو اعلام میکنه تمام حضار به استثنای یه نفر که بعد متوجه میشیم همون مست است، دکتر رو دشمن مردم تشخیص دادند. همه کف میزنن و هورا میکشند. دکتر با دیدن این وز از ناخده هرسل میپرسه آیا توی کشتیشون جایی براشون داره یا نه و ازش میخواد که برای رفتن به امریکا بهشون کمک کنه کاترین از شوهرش میخواد که برای حفاظت از خودشون از درهای پشتی برن اما دکتر قبول نمی کنه و با صدایی بلندتر رو به جمعیت میگه شما از این دشمن مردم قبل از اینکه خاک این, این ماجرا رو از پاش بتکنه باز هم خواهید که این حرف اشاره به یک از سخنانی داره که عیسی مسیح خطاب به حواریونش میگه. دکتر ادامه میده که من مثل اون انسان اونقدر بخشنده نیستم که بگم خداوندا اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن. آسلاکسن به فریاد این حرف دکتر رو مقایسه کفرامیز میدونه و بیلین که اگر یادمون باشه توی پرده اول قبلا در خونه دکتر خودش رو کافر معرفی کرده بود میگه که شنیدن همچین حرفهایی برای آدم مؤمنی مثل اون خیلی سنگینه در میان هیجان و فریادهای وحشیانه چند نفر بقیه رو تحریک میکنن که برن درو پیکر خونه دکتر رو خرد کنن صدای بوغ و سوت کرکننده هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه دکتر با خانوادهش در حالی که راه رو براشون باز میکنه به سمت در می‌رن همه در پی خانواده دکتر استوکمان فریاد میزنن دشمن مردم دشمن مردم و به سمت در هجوم میبرند. بیلینگ اظهار میکنه که لعنت بهش اگه دیگه به خونه دکتر بره و باهاش شراب بنوشه. هیاهو در خیابونها هم ادامه پیدا میکنه. فریاد دشمن مردم دشمن مردم یک لحظه هم قطع نمیشه. صبح از راه میرسه. در اتاق کار دکتر قفسه کتاب و گنجه برای انبای داروهای پزشکی دیوار رو پوشونده. دو پنجره در سمت راست هستند با شیشههایی شکسته. وسط اتاق میز کار دکتر انباشته از کاغذ و کتاب و همینطور سنگه. اتاق در هم ریخته است. دکتر استوکمان با لباس خونه خم شده تا با چتر چیزی رو از زیر یکی از گنجه‌ها در بیاره. و بعد از چند لحظه قطعه سنگی رو بیرون میکشه و در کنار باقی سنگ ها روی میز میذاره و دوباره مشغول کاوش میشه. دکتر تصمیم داره سنگ ها رو به عنوان یادگاری های مقدس برای پسرهاش الیف و مرتن به ارس بذاره تا اونا هر روز این سنگ ها رو ببینن. نه شیشه بری که ازش خواسته بودند تا برای تعمیر پنجره ها بیاد اومده و نه صاحب خونه با اینکه مرد خوبی به نظر میاد جورت میکنه که خونش رو از این به بعد در اختیار دکتر و خونه وادش قرار بده و با فرستادن نامه ای از بهشون دستور تخلیه میده به نظر میاد همه توی این شهر از ترس بقیه جورت هیچ کاری رو نداشته باشن با این حال این چیزا برای دکتر اهمیتی نداره چون تصمیم گرفته که با آمریکا بره مخصوصا با ناسزاهایی که بهش گفتن شیشه های در و که شکوندن و حتی شلوار دکتر که اتفاقا بهترین شلوارشم بود سالم نذاشتند و اونو پاره کردند مثل کاری که با عیسی مسیح کردند و جامعهاش رو دریدند دکتر عقیده داره که حتی اگر از این شهر به شهر دیگه‌ای هم برن باز هم فرقی نمیکنه و با افراد بهتری روبرو نمی‌شن چون هر کدوم برده یک حزبی هستند از نظر دکتر هرچند دنیای آزاد قرب هم اسیر اکثریت و افکار سطحی عمومی و حق بازیه ولی با اون حال اونجا سطح هر چیزی بالاتره حتی اونجا ممکنه یه آدم رو بکشن ولی روح یه آزاد مرد رو با شرارت خودشون شکنجه نمیدن و تازه آدم میتونه اونجا اصلا کاری به چیزی نداشته باشه و زندگی خودش رو بکنه چون دیگه شهر زادگاهش نیست و تعلق خاطری نسبت بهش نداره تا وجدانش رو ناراحت کنه. دکتر همینطور که در اتاق طبق که داره پس و پیش قدم میزنه میگه که کاش جنگل یا جزیره دور افتاده توی دریاهای جنوب میشناخت و به قیمت ارزونی میخرید با تموم این حرف ها اما کاترین زیاد موافق رفتن نیست و بیشتر نگران پسرهاشه دکتر اما معتقده که پسرهاش اصلا نباید توی همچین جامعه ای تربیت بشن کم کم سر و کله پترا پیدا میشه کاترین متعجبه که چرا پترا به این زودی به خونه برگشته تا اینکه پترا میگه که قبل از اینکه اخراجش کنن استعفا داده و توضیح میده که خانم باسک مدیر مدرسه دست کم سه تا نامه بهش نشون داده که صبح بیمه دستش رسیده بودن خانم باسک گفته بود که دو تاشون از طرف مردی بوده که خیلی به خونشون میومده و معتقده که پترا افکار بیش از حد داره پترا میگه که با اینکه خانم باسک وقتی باش به تنهایی حرف میزن افکار خیلی روشنی داره ولی حالا که این چیزا رو در مورد پترا شنیده که جرأت نداره که به عنوان معلم نگهش داره دکتر استوکمان که حدس میزنه که نامهها از طرف کیا بودند از اینکه جواب مهمون نوازی هاشون رو به این شکل دادن بیشتر از قبل برای رفتن مصمم میشه. همین موقع صدایی میاد و وقتی در رو باز میکنن، هورسلر رو میبینن که دم در ایستاده. دکتر با هیجان هایی که جمع کرده رو به ناخدا نشون میده. دکتر با هرس میگه که فقط یکی دو تا از سنگ ها درست حسابی بودند و بقیهشون بیشتر شبیه شم بودند تا سنگ. براش میگه که مردم بیرون ایستاده بودند و براش خطتنشون میکشیدند که پدرش رو در میارن اما کو مرد عمل. در این شهر مرد عمل پیدا نمیشه. هورسر معتقده که مردم حتما نظرشون برمیگرده دکتر میگه شاید اما مطمئنم وقتی که توی لجن دست و پا بزنن و به غلط کردن بیفتن که یه وطن پرست رو تبعید کردند. وقتی دکتر و خونوادش میفهمن که ناخدا هرسر به خاطر اونها اخراج شده، و از طرف مردی که تاجر و ثروتمنده و از هر جهت مستقل، دکتر زیاد تعجب نمیکنه. با این حال، هورسر معتقده که ویک آدم منصفیه و اگر جرأتش رو داشت و از مسئولان بالا دستی نمیترسید، از موندنش استقبال می کرد و زیاد از دستش ناراحت نیست. حتی از کارهایی که برای خانواده دکتر کرده اصلا پشیمون نیست و حالا هم که اخراج شده شاید بتونه توی شرکتی بیرون از شهر یه کار پیدا کنه. الان هم اومده که تا بهشون بگه برای رفتنشون به امریکا برنامه ای توی فکرش داره اما همین موقع است که صدای در بلند میشه کسی که از در حال وارد میشه شهرداره طبق معمول بقیه به اتاق نشیمن میرن تا دو برادر بتونن با هم تنها صحبت کنن شهردار بعد از اینکه به خاطر ماجرای دیشب عسار تاسف میکنه که نتونست جلوی افرادکاری کاری مردم رو بگیره نامه بزرگی رو در میاره و روی میز میذاره نامه حکم اخراج دکتر از طرف حییت چشمه هاست و میگه که به خاطر مردم جرعت نکردن کاری جز اخراج دکتر کنند. جرعت نداشتن جمله ای که امروز دکتر چندین و چند بار شنیده. شهردار اضافه میکنه که انجمن مهموخوندارها دارن توماری رو خونه به خونه میگردونن که در اون از همه شهروندای مسئول خواستن که دکتر رو به خدمت نگیرند. شهردار مطمئنه که حتی یک نفر از سرپرست خانواده ها هم جرئت نمیکنه که بزنه زیر امضای خودش و به دکتر نصیحت میکنه که با این اوزا که پیش اومده بهتره که برای مدت 6 ماه از اینجا بره و بعد اگر دید که میتونه به اشتباهاتش اعتراف کنه بیاد و اظهار ندامت کنه اون وقت ممکنه که بتونه برگرده سر کارش چون غیر از این که افکار مردم شدیدا متغیره و امروز یه چیزی میخوان و فردا یه چیز دیگه برای خودشون یعنی مقامات محلی هم خیلی مهمه که حتما اعتراف ای از طرف دکتر دریافت کنن. دکتر اما جوابش اینه که هرگز و هرگز و هرگز همچین بازی های ریاکارانهی ای نمیکنه. حتی اگر غیر از مردمی که قرار بود یه زمانی پشتیبانش باشن سنگ هم از آسمون بباره باز هم شهردار بهش توصیه میکنه که یه نوناور خونواده نباید اینطوری زیر همه چیز بزنه و همه چیز رو به خطر بندازه اما جواب دکتر اینه که تنها چیزی که یه آدم آزاده نباید توی دنیا انجام بده اینه که با رفتار خودش خودش رو به کسافت و لجن بکشه نباید طوری عمل کنه که نتیجه اعمالش عین توف سر برگرده توی صورت خودش شهردار که فکر میکنه میدونه این حرفو از کجا آب میخورن بهش میگه که دست از خواب و که ممکنه هیچ وقت عملی نشن بردار دکتر منظورش رو نمیفهمه. شهردار فکر میکنه که دکتر علکی خودش رو به اون راه زده و شروتی که کیل پدر همسرش توی وصیت نامش قید کرده با خبره. اما وقتی میبینه که نه دکتر واقعا توی باغ نیست از ثروتی که کیل قراره به نوه هاش بده میگه. ثروتی که حتی از سودش هم دکتر و کاترین میتونن آینده خودشون رو تضمین کنن. دکتر از خوشحالی سر از پا نمیشناسه. میخواد خبر رو به کاترین و بچه‌هاش بده که شهردار جلش رو میگیره و میگه که فعلا چیزی نگه. چون کیل می تونه وصیت نامش رو هر روز و هر ساعتی که بخواد تغییر بده. دکتر اما میگه که اون همچین کاری نمیکنه چون اتفاقا خیلی هم خوشحاله که به شهردار و دارودستش حمله کرده. پیتر از شنیدن این حرفیه که میخوره و میگه پس کل این ماجرا، کل این حملات و توندو بی‌حسابی که تحت پوشش دفاع از حقیقت علیه رهبرای جامعه رو انداختی یه مانور مشترک بوده. یه برنامه‌ای از پیش تنظیم شده برای تصاحب اموال اون مرتنکیل پیر. دیگه ما هیچ وقت کاری به کار هم نداریم. اخراجت هم غیر قابل برگشته چون حالا ما یه مدرک علیه تو داریم شهردار بعد از گفتن این حرفها بدون اینکه بخواد چیزی بشنوه میره دکتر استوکبان با نفرت تمام شروع میکنه به ابراز انزجار از برادرش که همون موقع پترا بهش خبر میده که پدر پدربزرگ اومده و میخواد باهاش تنهایی حرف بزنه مرتنکیل پدر همسر دکتر وارد میشه کمی اطراف رو نگاه میکنه و بعد از کمی گپ زدن با دکتر ای رو از جیبش درمیاره و مشتی کاغذ که به دکتر نشون میده. دکتر استوکمان با تعجب به کاغس های چشمه ها که در دست کیله نگاه میکنه و متعجبه که چرا باید در همچین وضعیت نامناسبی اون سهام چشمه ها رو بخره. اما مرتنکیل معتقده که هنوز هم میشه رونقی دوباره به اون چشمه ها داد. مرتنکیل اظهار تصف میکنه از اینکه توی تمام این سالها پدرش، پدر بزرگش و بعد هم خودش شهر رو مثل سه تا فرشته مرگ با آلودگی دباخونه شون که کثیف‌ترین دباخونه شهره به لجن کشیدن، اونم بدون اینکه بدونن. موضوعی که میتونه تا ابد لکه ننگی باقی بمونه براشون. بنابراین حالا میخواد پیش از اینکه بمیره از اسم و رسم حقوقش دفاع کنه. مثل یه آدم پاک زندگی کنه. جوری که دیگه هیچ کس نتونه اونو به اسم گورکن یه موجود کثیف صدا کنه. دکتر میپرسه چطور می‌خواد این لکی ننگ رو از پیشونیش پاک کنه و خبر نداره که خودش همون کسیه که مرتنکیل در نظر داره این کار رو براش انجام بده در واقع مرتنکیل برای اینکه دکتر تحت فشار و در عمل انجام شده قرار بده تمام پولی که قرار بود برای دختر و نوه هاش به ارث بذاره رو صرف خرید ها کرده تا دیگه دکتر نتونه مخالفتی کنه و از انجام این کار تفر بره چون اگر تفر بره دیگه هیچ پولی به نمی رسه و با این وضع ناجوری که الان دارن درست مثل این میمونه که پوست خانوادهش رو درسته بکنه. مرتنکیل معتقد وقتی پای زن و بچه در میون باشه هیچ پدر معقول هرگز هرگزی همچین کاری نمیکنه. اما دکتر همچین اعتقادی نداره و همچنان که ناراحت در اتاق شروع میکنه به قدم زدن با خودش میگه کاش اینقدر مطمئن نبودم ولی من کاملا معتقدم حق با منه. مرتنکیل در حالی که دفترچه رو در دستش سبوک سنگین میکنه به دکتر گوش زد میکنه که اگر به دیوونگیش ادامه بده سهام ها دیگه حتی یه پول سیاه هم ارزشی نخواهند داشت. دکتر که نمیدونه چیکار کنه با ناامیدی توی ذهنش دنبال راه حلی برای پاکسازی آب چشمه ها. همینطور که با خودش حرف میزنه و کلنجار میره فکرای مختلفی میان توی سرش. مثلا چرا باید واسه این مردمی ای که اونو دشمن خودشون میدونن و لباس توی تنش رو پاره میکنن کاری کنه واسه مردمی که پنجره های خونش رو شکستن اما پس مسئولیتش نسبت به خانوادهش چی میشه دکتر که میبینه نمیتونه با خودش به نتیجه برسه تصمیم میگیره که در این مورد با کاترین مشورت کنه مرتنکیل هم ازش میخواد که تا ساعت دو با فرستادن پیغام آریانه تصمیمش رو بهش خبر بده و اگه جواب نباشه همین امروز سهام رو به اسم خیریه میکنه بدون اینکه پولی به کاترین برسه مرتنکیل در حالی که داره میره در منتهی به ورودی ساختمان باز میشه و این بار رخشون به جمال هوفستاد و آسلاکسن روشن میشه دکتر مونده که اونا چطوری روشون شده با رفتاری که دیروز باش داشتن دوباره پا به خونش بذارن اونا هم طبیعتا همون بهانه‌ای رو میارن که دیگه گوشمون ازش پر شده که دیروز جرعت رفتار دیگه رو نداشتند نمیخوام بدونن چرا دکتر قبلا سر نخی از هدف و قصدی که داره بهشون نداده بود و چرا کس دیگه ای غیر از پدر همسرش رو نفرستاده دنبال خریدن سهام چشم ها کسی اینقدر بهش نزدیک نباشه تا اینطوری اسم دکتر سر زبون ها نیفت دکتر که ما مپوت مونده کم کم متوجه قضیه میشه و بعد ازشون میخواد که زودتر قسط و قرضشون از زدن این حرفا بگن با هم به هیچ خجالتی میگه که حالا که میدونن ماجرای پشت پرده چیه و قضیه از کجا آب میخوره میتونن ندای مردم رو در اختیار دکتر استوکمان قرار بدن و حتی حاضرن خطرش رو به جون بخرن و سوار انواج طوفان افکار عمومی بشن. البته از نیت واقعی دکتر باخبرن و میدونن که فقط به خاطر دلایل علمیه که اون میخواد صاحب اختیار هممام بشه و نه هیچ چیز دیگه ای. دکتر استوکمان هم سعی میکنه باهاشون همراهی کنه و در ادامه صحبتهاشون اضافه میکنه که دقیقا به خاطر همین دلایل علمیه که گورکن پیر رو ترغیب کرده تا برای خریدن سهامها باهاش همدست بشه. اون وقت کافیه تا فقط کمی، کمی با مجاری آب شهر ور بر برند، کمی هم زمینهای ساحلی رو بکنن تا اینطور به نظر مردم برسه که آلودگی آب رو رفع کردن. این کارا هم که خرج خیلی زیادی بر نمی دارن و در نتیجه همه چیز همون همونطوری میشه که خودشون میخوان و دنیا به کامشون شیرین میشه. هوفسات و آسلاکسان هم که دقیقا همین منظور رو داشتن هر دو حرفهای دکتر رو تایید میکنن. البته با این شرط که روزنامه ندایی مردم هم پشتش باشه. چون در یک جامعه آزاد مطبوعات یعنی قدرت و البته که قدرت افکار عمومی رو هم نباید فراموش کرد. بنابراین آسلاکسن قول میده تا نظر افکار عمومی رو هم از طریق صنف مسافرخونه دارها و انجمن اعتدال به نفع دکتر جلب کنه البته همه اینها در عوض انجام کاریه همون چیزی که دکتر هم میخواد ازش سردر بیاره اینه که می‌پرسه تموم این کارا در عوض چیه هوفستاد روال معمول با مقدم چینی توضیح میده که خیلی هم خوشحال میشن که بدون چشم داشته مالی از دکتر حمایت کنند. ولی امان از متزلزل ندای مردم که اونطوری که باید رو به راه نیست و رو به برشکست شدنه و خیلی بد میشه که کارش به تعطیلی بکشه اونم الان که قراره در صحنه سیاست کلان کار بشه دکتر با شنیدن این حرفا اظهار میکنه که این مشکل آزمایشی که ثابت کنه که اونا قطعا دوست مردمن ولی اگر نخواد یه پاپاسی هم از سهام بهشون بده چی و هوستاد بالاخره پرده از حقیقت نیتشون برمی داره و به دکتر یادآوری میکنه که ماجرای سهام رو میشه دو جور جلوه داد هم به شکل خوب هم به شکل بد یعنی اگر دکتر روزامر از ورشکستگی نجات نده، اونا هم قضیه رو منفی جلوه میدن. البته با این استدلال که این جزی از قانون طبیعته که هر حیوونی باید برای بقای خودش تلاش کنه و غذاش رو حالا از هر جایی که میشه تامین کنه. دکتر سوکمان که دیگه نمیتونه عصبانیتش رو پنهان کنه، این طرف و اون طرف و اتاق دنبال چیزی میگرده تا اینکه بالاخره چیزی که دنبالش بود رو پیدا میکنه، چترش. دکتر همونطور که چتر رو بالای سرش میچرخونه، رو با اسلاکسن و هوفستاد میگه حالا میخوایم بدونیم که از ما سه نفر کدوممون تره؟ تقریبا میشه حد زد که چی میشه موش بود و گربه بودو دور دور میز کار میدوه و فریاد میکشه و کمک میخواد کاترین پترا و هورستر از اتاق نشیمن میان و دکتر رو در حالی میبینن که داره رو بالای سرش میچرخونه تا اینکه بالاخره هوفستاد و اسلاکسن هر دو از در اتاق نشیمن فرار میکنن این هم بخشی از تنز پردازی و کمدی ایپسن توی نمایشنامه هاشه که به موازات ژانر تراژدی اثرش پیاده میکنه دکتر چت رو به گوشه ای پرت میکنه به سوی میز میره و روی یک کارت تا نیه بزرگ می و به کاترین نشون میده بعد کارتا رو دست پتر میسپه تا به دختر خدمتکارشون که اسمش رو باز هم طبق معمول فراموش کرده بده تا هر چه سریعتر اونا رو پیش مرتنکیل ببره دکتر میگه امروز با همه شاگردهای شیطون دیدن کرده حالا دیگه وقتشه که قلمش رو علیهشون تیز کنه تا خنجری بشه براشون کاترین میگه مگه قرار نبود بریم اما دکتر نظرش عوض شده حالا که ترس و بزدلی مردم شهر رو از نزدیک دیده و البته شاهد های اقلیت اصیل اما غیر روشن فکر جامعه بوده میگه که نه میخواد بمونه میگه اینجا میدون جنگ همینجا جنگ رو شروع کردیم همینجا هم پیروز میشیم ناخدا وقتی میفهمه دکتر میخواد دنبال سرپناه بگرده، پیشنهاد میده که توی خونش بمونن، که هم اتاق زیاد داره و همینکه خودش به ندرت اینجاست و غالباً در سفره. دکتر با شنیدن این پیشنهاد ناخدا حالا خیالش از بابت این قضیه راحت شده. صمیمانه دستش رو میفشاره میگه که قصد داره از همین امروز کارش رو خیلی جدی شروع کنه. مخصوصا حالا که از کار بیکارش کردن و حق تبابت رو هم میخوان ازش بگیرن، حالا دیگه کلی وقت داره برای انجام این کار. دکتر میخواد سراغ فقرایی بره که آه در بسات ندارن چون اونا بیشتر از هر کسی بهش نیاز دارن. دکتر به درد اونها میرسه و اونها هم در عوض به حرفای دکتر گوش میدن و اینطوری میتونه وقت و بیوقت براشون معزه کنه. مثل اون انسان که منظورش عیسی مسیحه. میگه میخواد توی گوش مردم فرو کنه که لیبرال ها آزادین. میخواد نشون بده که برنامه های حزبی حقایق تازه و نوزهور رو لگت مال میکنند و اثبات کنه که مراعات مساله شخصی، اخلاق و ادالت رو معکوس میکنه. میخواد روشن کنه که زندگی ما به خاطر اینجور چیزا یا زشتی به خودش میگیره. دکتر از ناخدا هرستر نظرش رو میپرسه اینکه آیا میتونه مردم رو متوجهی همین حرفایی که الان گفت بکنه یا نه. چیزی که در ناخدا هورسل جالبه اینه که بیخود و بیجهت در مورد مسئله ای که اطلاعات کافی نداره اظهار نظر نمیکنه. اینه که در جواب دکتر بی هیچ خجالتی میگه که شاید بتونه از پسش بر بیاد. شایدم نه، نتونه. چون خودش چندان در این امور وارد نیست. بنابراین دکتر نقشش رو براشون میگه. ی دکتر اینه که رهبران احزاب باید نابود بشن. چون از نظرش رهبر حزب مثل که هر ساله اددهی از حیوانات کوچیک را برای بقای خودش شکار میکنه مثل هوفستاد و آسلاکسن بعضی از مردم تومشون میشن و بعضی هم طوری مفلوج و ناقص میشن که دیگه به هیچ دردی نمیخورن جز این که جزو اتحادیه مسافرخوندارها و دارها بشن یا مشترک روزامهی ندایی مردم البته کاری که خود دکتر سکمان میخواد انجام بده جدا از رهبری کردن نیست. پس با توجه به حرفاش از اول نمای تا حالا شاید بشه اینطوری نتیجه گرفت که رهبری به شیوه گذاشتن از منافع شخصی یا حتی فدا کردن منافع شخصی و استفاده قدرت توسط کسی که دانش و آگاهی بروز و همینطور فرهنگ بالایی داره مشکلی نداره و اتفاقا کار درستیه. دکتر سکمان با تموم شدن حرفاش لبه میز میشینه و از کاترین هم میخواد که ببینه امروز آفتاب بهار با چه نیرویی میدرخشه کاترینم نگرانه و میگه کاش میشد فقط با همین آفتاب و هوایی بهاری هم زندگی کرد دکتر همونطور که انتظارش میرفت میگه شما میتونید با کمی قناعت با کمی صرفه به زندگی ادامه بدین این زیاد رنجاور نیست چیزی که برای من خیلی رنجاوره اینه که من کسی رو نمیشناسم که به کافی شجاع و آزاد باشه و بعد از من دنباله مبارزه رو بگیره. اینجاست که الیف و مرتن، پسرای کاترین و دکتر از اتاق نشیمن داخل میشن. همه تعجب میکنن که چرا اونا به این زودی از مدرسه برگشتن. ظاهراً های مدرسه زمان زنگ تفریح که میشه شروع میکنن با دعوا کردن باهاشون و مدیر مدرسه بهشون پیشنهاد میده که بهتره چند روزی رو در خونه بمونن تا بلکه آب از آسیاب بیفته. دکتر بشکنی میزنه و از میز پایین میپره. با خوشحالی به بچه‌هاش میگه که دیگه پا توی اون مدرسه نذارن. پسرها هم از خدا خواسته با خوشحالی هورا می کشن. دکتر بهشون میگه که میخواد از این به بعد خودش با کمک پترا بهشون آموزش بده تا بتونن ازشون انسانهای آزاده و شریفی بسازه. کلاس درسشون هم میشه همون اتاق جلسه ای که مردم بهش تهمت دشمن بودن زدن. منتها باید چند تا دیگه هم شاگرد داشته باشن. حداقل دوازده تا پسر این حرف دکتر ما مارو باز هم یاد عیسی مسیح و این بار 12 یاره اونش میندازه. از پسرهاش میپرسه که آیا بچهای ولگردی رو سراخ دارن تا ببینه آیا میتونه از بینشون مقصای استثنایی پیدا کنه یا نه. مرتن میگه که یه عالمه از این بچه‌ها میشناسه اما میخواد بدون وقتی همش آدم آدمهای آزاده و شریفی شدن بعد باید چیکار کنن. دکتر هم میگه که ازشون میخواد تا همه ها رو از این آب و خاک بیرون کنن و از این کشور دور بشن. برن سمت غرب ایلیف پسر بزرگتر مردت به نظر میرسه ولی مرتن به خوشحالی به هوا میپره و هورا میکشه. دکتر اعتقاد داره که دیگه قویترین مرد این شهره و حتی فراتر از اون قویترین مرد این دنیاست. کاترین و مرتن تعجبشون رو ابراز میکنن. دکتر صداش رو پایین میاره، افراد خونه رو گرد خودش جمع میکنه تا محرمانه براشون حرفی بزنه. حرفی درباره یک کشف بزرگ دوباره که تازه بهش رسیدن میگه میدونین واقعیتش اینه که قوی ترین آدم توی دنیا اونیه که از همه تنها تره کاترین سرش رو با لبخند تکوم میده و پترا دستان پدر رو با اعتماد میگیره و این پایان نمایش دشمن مردم خب به پایان این قسمت رسیدیم حالا با شنیدن این قسمت متوجه میشید که ایپسن بعد از فشارهایی که روش اومد چطوری به اونها جواب داد و اومد سراغ نوشتن نمایشنامه دشمن مردم امیدوارم که به هر حال این قسمت رو دوست داشته باشید برای ما بنویسید که با کدوم طرز فکر و شخصیت نمایشنامه موافقید نظرتون در باری اجرای کار چی بوده و در نهایت اگر دوست علاقه مندی دارید یادتون نره که رو بهش معرفی کنید بدون این حرف اضافه و با آرزوی سلامتی برای همه شما تا قسمت بعد الف و ماه آینده از شما خداحافظی می کنم این نقش ماند از قلمت یادگار عمر